أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله طاهرين اللهم صل الله على محمد وآل محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عرض سلام و تبریک میلاد حضرت امیر علیه السلام و امام جواد علیه السلام اعیادی که گذشت و تبریک عرض میکنیم انشاءالله که ماه رجب برای شما همراه با برکات و فضائلی باشه که برای ماه رجب شمردن اما وارد بحث خودمون بشیم بحث حدیث ششم ان شاء الله امروز وارد میشیم. اگر در مورد های قبلی مطلبی دارید بفرمایید. اگر نه حدیث ششم رو با هم بررسی کنیم. ممکنه بعضا یه ریزه کاری‌هایی تو حدیث ها مونده باشه. دیگه اونها رو خود عزیزان ان شاء الله پیگیری میکنن و اگر بحث لازم باشه حتما ان شاء الله توش دارید. زباست. بله. ها بده سوالت یادم رفته ولی اینکه یه سوال داشتی یادم آره بگو اینو دوباره نگاردار باز یه جلسه دیگه که ان برای یه حدیثی که تحقیق شده اونجا قشم توضیح بدیم آره الان توضیح بدم خیلی ارتباطی با این حدیث که داریم نداره. یه حدیثی رو انشالله وارد شدیم که بخشی ازش اومده نه کلش اون موقع انشالله آره خدا خیرت بده. سوال خوبی هست حیقه الان واردش بشیم خیلی خوب اما وارد حدیث ششم میشیم اجازه بدید در افسارت درایه رو هم من آماده کنم بسیار خوب میخواید یه بار احادیث رو از اول مرور کنیم ببینیم سلام علیکم فضا یه نوایات چی بود؟ جنبندی بشه؟ چون بعضی وقتا دونه دون آدم وارد میشه یادش میرستن فضا چیه؟ اجازه بدید تو همین در مفضال من وارد بشم ببینید ما اولین حدیث رو این رو دیدیم اعرفوا منازل رجالم منا على قدر رواياتهم شما تو ذهنتون باشه این حدیث معتبر بود نبود تو چه کتاب های نقل شد آیا متعدد نقل داریم یا نداریم و معنیش معنیش رو ما گفتیم که حضرات این رو گویا میخوان به ما برسنن که در در این فضای متشتت و بلبشویی که هست همه رو بذارید کنار فقط محور ما هستیم هرچی از ما روایت کرد و هر چقدر بیشتر روایت کرد سراغ او باید برید نه دیگران دومیش هم اعرف و منازل شیعتنا به قدر ما یحسنونم من روایات هم انا اینم در همون راستاست که فقیه را فقیه نمیدانیم تا محدث باشه و ما اونجا توضیح دادیم که محدث و مفهم بودن فقیه اینه چه به هشچ چیزی رو فهماندن به کسی که نمیدونه حضرت علی حقه این محدث نیست که مفهم نیست بهش نفهموندن این نفهمیده حدیث سوم اعرفون منازل ناس مننا علا قدر روایات هم اننا این هم فرقش فقط این بود که ناس بود حدیث چهارم همون نامه امام کاظم به علی بن سوید بود که حضرت فرمود معالم دینت رو از غیر شیعه نباید بگیری غیر شیعه خائن است و لعنت خدا و رسول خدا و ملائکه و پدران حضرت امام کازم و لعنتی خود امام کازم و لعنت و شیعتی در پی اونهاست و خب ببینید همش در, در راستای همدیگه است یعنی یک چیز رو چشی میخواد به ما در قالب این روایات بفهمانند چه سراغ غیر شیعه نباید رفت این در واقع مقدمی میشه برای این رجال کششی چرا؟ چون میخواد اصحاب حضرات رو بگه شیعیان رو بگه اولش میگه غیر شیعه نداریم نباید بریم سراغشون شیعیان رو باید بریم شیعیان هم اینا هستن که وارد خواهیم شد انشاءالله چند جلسه دیگه وارد این راویان خواهیم شد حدیثه پنجم هم که جلسه قبل خوندیم این بود که حضرت فرماید در هر قرنی قرن یا به معنی همین دوره زمانی هست که به 100 سال میگیم قرن یا مردم یک دوره قرن یعنی مردم یک دوره نه خود اون زمان جفتش هم داره در هر قرنی عادلانی هستند که این دین را حمل می کنند و محافظت می کنند نمیذارن تحریفی تعویلی چیزی این رو بیاد و خرابش کنه احسانت. بله دیگه عرض کردم جلسه قبل بود که گفتم از لسان العرب تو این نرم افزار داشتیم و من گفتم لسان نشون میده که تو منابع اهل سنت داریم بله. <تصحیح> چی گفته بود چی؟ چی؟ بله بله اینا هست متاسفنه خیلی خوب برحال از این روایت تو این بحث ما ما برمیاد که منظور از ادول و عادلانی که دین خدا رو حفظ میکنند همین عادلان و اصحاب بیت علیهم السلام هستند اما حدیث ششم ببینیم این هم در همین را یا نه محمد بن مسعودن حدیث رو ببینید قال حدسنی علي بن محمدن قال حدثني احمد بن محمدن البرقي عن ابيها اما ذكره ان زيد الشهام عن ابي جعفر عليه السلام في قول فعلیاً زور انسانو ایلا تعمهی انسان باید به تعمه خود بنگرد نگاه کند. قال عزت فرمودن چه الی علمهی علم تو نگاه کن. الذی ازی چوزهو عمانی اون علمی که آخس میکنی، نگاه کن ببین از چی آخس میکنی. خب حالا قبل از بررسی سنادیو اعتبار سنجی و اینها دلالت روشنه دلالت نکته نداره. نکته مبهم یا لغتی چیزی نداره. و و آره, آره. حالا اینو, اینو تو مرحله دوم بررسی میکنیم کنیمیم. اون اونچه ظاهر روایت هست رو ببینیم بعد این فرماش شما هم جا داره حتما اونجا باید بررسی کنیم. که اون حرفی که قبلا من یه بار عرض کردم ادعا کردم آیا اینجا هم میشه پیاش کرد یا نه تونم تذکر به موقعی بود بعد. خب. امام باقر علیه السلام به زید شهام میفرماید که آیه قرآن چه میفرماواد فلینظر الانسان الى طعامه غذا چه میخوری ببین چی داری میخوری این منظور خداوند متعال اینه علمی که می میکنی ببینی این علم رو از چی داری عکس میکنی خیلی خب یعنی از هر کسی نمیشه علم اخس کرد باید حالا سراغ چی بریم دیگه اینجاش تو روایت نیست کجاست جواب این سوال؟ از کی علم اخذ کنم روایات قبلی از غیر شیعه اخذ نکن حدیث چهار حدیث پنج عادلانی هستند که دین را حفظ میکنن ببین جواب قشنگ تو روایات هست همدیگر رو پوشش میدن نمیزارند جواب بماند چیا بهترن؟ اعرف و منازلن رجال الان قدر روایات بعضیا بعضی ها هستن فقط امام رو میبینه هیچ کسی نه رو نه راویان رو نه اون فقه های اهل سنت رو نه هیچ کسی رو نمیبینه فقط امام میگه من هرچی هستم و هرچی دارم از امام صادقه این ارزشش بیشتره ببینید پس چشی در واقع ما را با این چند تا با این پشتاله باید که تالا خوندیم در واقع ذهنمون رو ساخت خیلی هم درسته و اینو من همینجا عرض کنم بعضن ما یه مقدار از این قفلت میکنیم ما میبینید که در رسیدن به معالم دین از حتی از غیرشی هم استفاده میکنیم شاید شما باورتون نشه ولی چرا دیگه؟ چطاب اخلاقی نوشته میشه؟ مبانیش از چیه؟ امام محمد غزالی نمیدونم از فلان ابن فلان فلان ابن فلان خب این هزارات این رو نمیخوان اونها دین رو نشناختن اونها اصلا توی فضای دیگری هستن اونها ملعون هستن چرا رفت؟ میچه حسن خلق. پس این در واقع الان میتونه یک مضمون مقاله ای یک کتابی باشه که ما در رسیدن به دین و معارف دینی هیچ راهی نداریم غیر از اهل بیت و کسانی که اهل بیت رو فقط میبینن راویان راویان از اهل بیت و اونها هم درجات دارن بعضیشون بالاترن بعضیشون شاید مراحل پایین تر باشن این خیلی مزمون خوبیه این رو حتما این دوسته تراویت دیگه هم تموم شد حتما این روی خروجی برای خودتون داشته باشید بسیار خوب اما خود روایت رو یه بررسی بکنیم محمد ابن مسعود یه خود دقت کنید محمد ابن مسعود چیه؟ ایوشیه دیگه داشتیم اطفاقا حدیث قبلیش هم از ایاشی نقل کرد آقای چشی حدیث پنج رو ببینین محمد ابن مسعود دبنو. حالا اونجا ابن محمدش هم اوورد پدر بزرگش هم زیک کرد میخوام تا سند رو با هم مقایسه کنیم حالا که هر جفتش از عیاشی شد مقایسه کنیم عیاشی از کی هم کرده بود اون قبلی رو قال حد سنی علی یبن محمد ابن فیروزان اینجا چی گفته؟ حد سنی علی یبن محمد دیگه فیروزانش رو نگفته حدس میزنیم احتمالا همون باشه البته خب یا حدس کاملا است. با این نمیشه گفتش. چه زده چه معنی تصحیحات یا خطیه و فل مطبوعه علی بن محمد ابن فیروزان تو نسخه های چاپ شده اون فیروزان رو بهش اضافه کردن. البته این نو تصحیح ها تصیح های اجتهادیه دیگه. یعنی طرف از روی نسخه موجود این رو ننوشته. به ذهنش رسیده که این حتما فیروزانه دیگه گفته بنویسید فیروزان. این تصدیه ها خوبی نیست باید پا برقی بیاره مگر توی نسخه دیده باشید خب قال پس تا اینجا سند یکسان شد عیاشی از ابن فیروزان قال حدسانی احمد ابن محمد برقی احمد ابن محمد بن خالد برقی هست قبلیه چی بود؟ حدسانا احمد ابن محمد بن خالد برقی خودشه که خودشه ام ابیه احمد از پدرش محمد ابن خالد اون چی احمد ابن محمد ابن خالد برقی قال حدثنا احمد ابن محمد ابن ابیナス اینجا دیگه دو تا سند از هم جدا میشه پس ما این اول سند رو تا سه نفر کاملا جدا داریم درست هاجای خوبید ان خیلی خسته یا آره احتمالا من بحثم خوب نمیتونم بگم که جذب کنه شما رو ببخشید حالا این سند رو نگاه کن پس شما میخوام استفاده کنم آقای ببینید پس برمیگردیم به حد... حدیث خودمون محمد مسعود علی بن محمد فیروزان بعد قال حدسنی این این روش که الان انجام دادیم بیا کار خیلی ساده بود دیگه ولی در مواردی که اسمها متحده اصلاً الان علی ابن محمد، کلی علی ابن محمد داریم. از کجا بفهمم این چیه؟ این یه نمونه کاره. ببین چی ازش نعل کرده. این از چی نقل کرده. با این موارد قشنگ میتونید قبلش رو ببینید، بعدش رو ببینید، راحت میشه به این مجهولات رسید. از دور نگاه کنید بگید آ، علم رجا سخته، چطور میشه؟ ولی میرید توش، میوید چم چم ریزکاریاش رو یاد میگیرید بعد از یه مدت میتونید کاملا رجالی بشید. علوم دیگه هم همینطوره. از پدرش نقل کرد محمد ابن خالد برقی امن من او این امن من یعنی چی یعنی محمد ابن خالد برقی دیگه از چی نقل کردش رو به ما نگفته پس این زكره او یعنی چی آخ زكره او گفته که چی نقل نکرده چی لم از او محمد برقی چه ذکر کرده بعدی ذکر نکرده بعدی ها حالا یا پسرش احمد ابن محمد یا اون فیروزانه و یا عیاشی بالاخره یکی از این ها ذکر نکردن امن ام زکرهو آخه بعضا درم میبینید که یادش میره طرف میگه آقا شخصی رو گفت که من خاطرم نمونده پس میشه امن ذکره او کرد و بیچاره تاثیر نداره من مشکل دارم من گمش کردم این شخص رو خیلی خوب حالا الان حدیث چی میشه با همین یدون امن ذکره او رجال الان رجالی های کلاس ما رفتن دیگه میمونم حدیث ضعیف خداحافظ ما رفتیم جلسه بعد بعدی رو حدیث بعدی رو برد حدیث از حجیت ساقط شد چرا؟ چون متصل نیست دیگه من نمیدونم این امن من که اونجا اشاره بهش شده، شاید یادم آدم شاید یادم به درد نخور از جهت حدیثی. لذا حضرت رجالی این دیگه ساقط شده. از زید شهام نفر بعدی، زید شهام از امام باقر علیه السلام، ابی جعفر، امام باقر علیه السلام. خیلی خوب، حالا این رو وارد اون در مسائل درایه هم بشیم، در اونجا ببینیم اطلاعات اینها رو در مسائل درایه این حدیث در وسائل و شیعه حدیث سی و هزار و, و, و, و, و, و حالا بذارید بیارم خود حدیث رو وسائل شیعه خب 33400 فنجانو و انها ان علی ابن محمد ان اح... همینه خودش منبعش هم کجا رجال کششی حدیث ششم میبینید انها ان علی ابن محمد آره باید از عیاشی باشه احتمالا حدیث قبلیش هم از عیاشی بوده آه درسته ان محمد ابن مسعود میبینید شیخ راملی از اینجا لینک داده به اون. گفت دیگه دوباره تکرار نکنم. خیلی خب ما وسایل رو آوردیم تا از بس رجالیش و سندیش استفاده کنیم. بذاریدین بیاد. حالا اونا چی شما می‌شناسید با هم دیگه ببینید عیاشی امامی یا سغتون یا نه؟ بله امامی و سغتون. عیاشی از کردم جلسه قبل مستفسر شد دیگه یعنی اول شیعه نبود و بعد ایشون خیلی فداکاری کرد حالا الان وقت نیست و تو نجاشی گزارش ها رو می دیدیم که ایشون خونش رو تبدیل کرده بود به یک مدرسه اصلا شیعه که طلاب و اساتی دون اینا توش داشتن همه کار می کردن. یکی مقابله می کرد. یکی می نوش یکی میخون. و گویا ارث پدری فراوانی هم داشته که در همین راه خرج میکنه خدا رحمت کنه. ببینید اسلام رو اینها برای ما حفظ کردن، دین حق رو اینها حفظ کردن و حق دارن بعد من و شما. ای کاش ما هم یه باری از این علم دین رو میتونستیم هم کنیم برای آینده‌گام. خب، آقای عیاشی از علی بن محمد فیروزان شد دیگه این درسته؟ خب علی ابن محمد فیروزان رو چی گفتیم تو اون حدیث قبلی؟ سره بود یا نه؟ اطلاعات نداشتیم اطلاعات نداشتیم آره فقط تو رجال شیخ توسی داشتیم چه گفته بود کسی رو روایه این ها هست دیگه متاسفانه اطلاعات بیشتری نداریم از ایشون خیله خب علی ابن محمد حالا بذارید فیروزان رو یه بار دیگه ببینیم چون دو تا حدیث پشتر هم بود لقبش قومیه قومی بود ساکنه ساکنه کجا بود قوم چه نمیشست قومی بود ولی اهل کشم قومی بود ولی ساکنه کشم بود آره اینجوری گفت کنیاش هم هستن. حالا اگه میخوای تراجعه بشم بزنید آه علی ابن محمد بله علی ابن محمد ابن فیروسان القومی کسی رو روایه یوچن نابل حسن کانم مقیمن به چشم و گفتیم این مقدار گزارش به درد سقتون امامیون نخورده تو این نرم افزار حد دقیقا میشه جلسه قبلم دوباره این رو گفتم تحکیت میکنم میشه بیشتر از این کار کردها. شما الان چتابهایی رو دارید منابعی رو دارید که شاید این نرم افصار اونا رو ندیده میشه اونا رو هم دید تواریخ رو ببینیم مثلا تاریخ ماوروان نهر شاید چند تا کتاب داشته باشیم توش ممکنه یه گزارشی باشه که به درد این بخوره این نرمحصار با توجه به رجال توسی و فهرست توسی و اینا نوشته شده دیگه این نرفته مثلا کتابای تاریخ دمشق و تاریخ ماوروان نهر و تاریخ فلان و اینها رو ببینه لذا این یه مقدار پایان کار نیست تو این پرونده میشه کار کرد ولی خب یه وقت میخواد دیگه یه فرصتی میخواد دادن کار. چرا حسن بشه نداره ثغتون نداریم خب خب، الفاظ دیگه داره روایه و اصلا اینها مد حساب میشن یا نه چرا چرا دیگه ببینید مدهش اینه چیه بگیم آقا این شخص آدم فازلی بود آدم راستخوی بود عادل بود فلان بود اینها اینا مده <تصفح> یه دونه سختون میگفت کارمون تموم میشد دیگه حل میشه اونا نگفته به هی داره میگه نماز خونه این نمیدونم اهل ادالت بود اهل چی چی بود اهل فلان بود با اینها مده حاصل میشه لذا حدیث بشه حسن حسن الفاظ تصفیح و سقه ندارم آره دیگه, الفاظ دیگه, دیگه که خیلی خوب دلالت... حالا این چسی رو روایه به من این نیست که این آدم خوبی بوده و مدهش میکنیم چه بسا راویه ضعیف و غالی گلوه اصلا کارش کولی هم روایت داره, داره. نمیشه آره با این حالا باز میتونید روش فکر کنید آره بوده نخوره خیلی ما آ... آ... از قوم رفته این شاید مثلا اونجا مشکلی داشته رفته ک قومی میخواب تو قم میمون دیگه اگه اونا بگید ما در مقابل تو اینو میدیم چرا رفته بیرون حتما یه چیزی داشته دیگه ریگی به چفشش بوده حالا نمیدونی نمیشناسیم که ولی به هر حال میخوام بگم چه این چون اطلاعات کافی نداریم وثاقتش که گفته نشده متش هم گفته نشده زمین اینکه اینا هم بگم اگر خیلی بخواد مطلب خشخاش بذارید حدیث حسن هم حجت نیست چرا اینو تالا گفتن اساتیدتون بهتون گفتن تو عاصول اینو بحث کنید. چون میگن دلیل بر حجیت خبر واحد سیره اوقل سیره اوقللا هم چی رو حجت میدونن؟ خبر سقه رو خوبی سقه نیست که. یعنی نمیدونیم س ق پس حجت نیست. لذا اگر هم حتی درست بشه این البته اینو بگید کار م است اگر اینو بگیم کار م چون همه روایات ابراهیم ابن هاشم قومی چی میشه. حسن نمیشه و از رجیت میشه یعنی کلی چند هزار تا از کافی دوباره از دست میدی. به خاطر همین اینو دیگه زیر ردش کردن موسق موسوق صدور بگیر راحت تره ولی آره. خب سقه بودن راویر هم خیلی وقتا لازم میدونن البته راه داره طرف میاد میگه آقا ابراهیم ابن این همه روایت در کافی داره این توثیق عملی کلهنیست. اینو آیه زنجانی اینا اینجوری میگن. توثیق عملی کلهنی یعنی اینکه این هم ازش نقل میکن. کنه. شما تو این کلاس هی ببینید من از یه شخص خاصی هی نقل میکنم. نقل میکنم. کنم، آخرش بگم اون چه نقل مجردم؟ آدم درستکویی نیست. دار. خب شما یقیمنو میگیرید، میگید پس برای چیه این همه ازش نقل میکنی. این به نظر میرسه توثیق عملی باشه و میگن اصلا توصیق عملی از توصیق قولی خیلی قوی‌تره من. نجاشی یه دونه بگه ثقتون کجا؟ کلینی این همه روایت ازش اش به ما بده. این فقط جیرش اینه که چه راویان غیر صقم با این توثیق میشه سهل بن زیاد هم میشه ها. علت اینکه کلینی از سهل بن زیاد زیاد نقل کرده، شاید این نیست که سهل ثقه بوده، شاید این بوده که این نسخهش نسخه خوبی بوده و روایتش اطمینان بخش بوده. بزای این اکسار اینها دوباره باید بررسی بشه. هفته قبل من اشارهی به این مطلب کردم. خیلی خب. آقا جان علی ابن محمد ابن فیروزان رو نمیدونیم چه جوری هست؟ اطلاعات نداریم. در نتیجه دیگه شرمنده ایم دیگه از این حیث. یه مقدار مشکله بعدش چی بود؟ وسایل رو بیاریم. آها. احمد ابن محمد برقی چون اینشون آدم بزرگی است. آقا برقی آدم بزرگی است. هرچند یرویان زعفا داره ولی امامیون سقتون پدرش پدرش رو ببینیم پدرش رو طالع حالا نداشتیم به بله ارس کردم آدم بزرگوار ایسای برقی خودش منتها یروی از زعفاش یه دونه مشکل هستیگه بلاخرده ضعیف نمیکنه ولی این حواستمون باید بهش باشه این پدر آقای برقی محمد ابن خالد برقی میبینید اطلاعات زیاد هست کتاب داشته ایشون یا نه؟ حالا از اینجا ببو رجال توسی داره بر کتاب داشتنش نیست قضایده هم همینطور رجال نجاشی نجاشی باشه این یعنی کتاب داشته دیگه نجاشی تخصصا ما کتابدار هاست پس کتاب داشته حالا این وارد نمیشیم دیگه این شخصیت بزرگ ها... هست بله؟ این رو دلید دلید ارسال, ارسال رو؟ ها, ها به ارسال رسیدی؟ بذار به هم بلسیم. کو؟ احمد بن محمد ام من آره. از چه کسانی نقل کرده اینو میگی ازش استفاده کنیم چرا بریم این محمد ابن خالد برقی نگفته از کی نقل کرده استاداشو, استاداشو, استاداشو میبینیم روائا یا روائا روائا دیگه استاداشو میخوای روائا ابن ابی امش عبدالله ابن مغیره و هو بن سعد ابن سعد اشعری محمد ابن سنان خب بگو ببینم کدومش <تصفيق> میتونی بگی بگو زید شهام هم خیلی خوب اینم زید شهام که نفر بعدی تو سند هست همه زمان بودن آره آره بابا راوی زیاد داشتیم خب زید آقا این زید شهامه بین محمد ابن خالد برقی و زید شهام یه نفر است نمیدونیم چیه الان کدوم رو ببینم شاید کمی فرجی شد الان زید شهام روان رو ببینم روانه این دیگه روانه دیگه چون راوی از این رو میخوایم ببینیم, ببینیم چی بوده روانه مفضل ابن صالح حسن ابن محبوب بعض اصحاب حسین ابن مختار اول ابن اسمان آره من همینجوری هدسم همین الان به یه نفر رفت اگه گفتید چیه؟ این بازی میکنم میگن یه عدد تو ذهنت بگیر نه یه خورده به این آدم نگاه کنید به این آدم نگاه کنید توی محمد ابن خالد برقی هم اینم استاداشه ابن عبی اومیر، عبدالله ابن مغیره، وحب ابن وحب، سرد ابن سرد. حالا دوباره زید شهار میارم مفضل ابن صالح حسن محبوب، فلان ابن عبی اومیر من یه ذره این حدثم میره رو ابن عبی چرا؟ چون ابن عبی اومیر استاد محمد ابن خالده شایرد زید شهام هم هست خب حالا این زن چقدر ایجاد میکنه برای ما؟ خیلوچم بیس درصد، سی درصد، چه درصد، خیلی نیست اما ها الان یک کاری میخوام نشونتون بدم با اون ابن عبی امر بودنش یه ذره تقویت میشه اون کار چیه؟ از این نرم افزار میلیم بیرون دیگه آره آره حالا قبلا که بیمیزن اصلا زید شهام چطوریه؟ امامی سقه آره زید شهام امامی سقه بریم تو احادیث مشابه الان این حدیث ششم احادیث مشابه و شیه چه همین خودش هدایت الامن مال خودش شیخ هره اینا رو من دونه دونه میگم تا اینا رو تقریبا برای شما یاد بگیرید که هدایت الامن همون چتاب شیخ هره دیگه این منبع نیست که چتاب های از همون اول قرن دوم سوم به بعد چه خیلی نداریم ها. قرن سوم به بعد تا قرن پندرام شیشومینا برهان نه منبع نیست اختصاص مفیده و حال شیخ مفیده این منبعه حالا نگاه کنید سندشو میخونم براتون از این برمیخونم از امام شروع میکنم عوی جفر علیه السلام چیه امام باقر خودمونه علیه السلام برای امام باقیر یه سلوات بفرستیم اللهم صلوه علیه و آلون محمد یه فضای ظلمت تصور کنید توی فرصت توی بیابانی هستید چشم چشم رو بینه هیچ چیز نه ماه هست نه ستاره‌ای هست هیچ ظلمت ظلمت هست و شما ممکنه از بین برید در اینجا خطرات مختلف هست در این ظلمت و سیاهی یه دفعه یک نوری بیاد و این سیاهی رو بشکافه و درغ بزنه جهان رو روشن کنه این نور امام باقر امام باقری یه همچین حالتی داشتن در ظلمتی که عمر و ابو بکر درست کردن و بعدی ها این رو تاکید کردن تا زمان امام باقر ظلمت همه جا رو گرفت امام باغیر اینجوری مثل برق جهید لزو حضرت پیغمبر فرمودند رو العلم هست امام صادق هم گفت کامل هرچی بود دین رو کامل فرمودند لذا این دوتا امام بزرگوار از حیث ارائه دین به ما خیلی برگردن ما حق دارن خب رو ببینید امام باقر بعدش کیه زید شه هم. بعدیش که؟ ابن, ابن عبی عمریش. بعدیش یعقوب ابن یزید. اگر این بعدیش به جای یعقوب ابن یزید محمد ابن خالد برقی بود من تقریبا مطمئن می شود. یق... یقین پیدا می کرده. ولی چون اون نیست اون زن 20 درصد من در حد 60-70 درصد اومد بالا. ولی یقین نشد. هم نشد. من حدثم حدث زن نیم اینه که اون من زکره احتمالا ابن باشه. بله خب باشه؟ نه زید شه باید ببینیم با محمد ابن خالد برقی چند تا طبقه فاصله داره آره اونو باید ببینیم آره ممکنه چرا ممکنه چرا باید روی یادش رفتوشه مثلا معروفه که این کتاب خب میگم شاید بعضی وقتها اون یاد رفتنه باشه بعضی وقتا ممکنه این مشکل دیگه ای باشه باشد باشد. مثلا دیده که الان ابن عبیامر تو اوضاع سیاسی بدیه الان دستگیرش کردن در اینها اینام بگه اها ابن عبیامر اینجور گفت میگن ابن عمر پس خودت هم بیا بارو پیش ابن عبیامر اینجوری میشه تقییتا اه. یا بالاخره به یه دلیلی اینا مجبور بوده نگه دیگه چاره نیست یه دلیلی ممکنه بوده باشه حالا نکته شما هم نکته خوبیه ممکنه ابن عبیومش بعدش این یعقوب ابن یزید بعدش محمد ابن خالد ممکنه حالا اونو من بررسی نکردم میشه اونو رو بررسی کرد خیلی خوب بله خب باشه اون فاصله یه نفر کافیه دیگه مگه مگه ابراهیم ابن هاشم قومی نیست مگه؟ نه, نه نه نه مشکل نیست. ابراهیم ابن هاشم قومیه ولی با یه واسطه میخوره به اصحاب امام صادق علیه این مشکل نداره. حالا میگم با باز بررسی بشه برد نیست خوبه آره. خیلی خوب. چی؟ ابن ابي عمر نظرم نمیدونم فکر می کنم کوفه هستش. یادم رفته. بوده خب آقای مددی نظرشون همینه دیگه میگن سند رو هیچ وقت همینجوری نگاه نکنید یه رجالی سند رو حالا نه چه بلد نیستن بلدن از امثال ما ها خیلی خیلی بالاتر بلدن ولی مبناشون اینه سند رو همین افراد رو میبینن آقای مددی این رو دوباره احیا کرد که میگه سند رو با دید تاریخی جغرافیایی ببینید اینجا سند قبل چند هست کوفه است. اینجای سند قرن بعدیش مثلا قومه. اینجای سند قرن بعدیش بغداد اینجوری این ببینید. البته مال آقای مددی تا این بوده، قدیمیان بوده. مخصوصاً مجلسی پدر و اینها اگر خواستید از یه نفر مبانی حدیثی بگیرید و کار کنید، مجلسی پدر خیلی خوبه. ازش مبانیش رو بگیرید خیلی خوبه. آقای مددی هم حرفای ایشون در واقع خیلی‌هاش هم حرفای که دوباره زده میشه. خب هر حال این هست. حالا یعنی. یه دو دیگه دو دیگه دو دیگه آره چه اشکال داره الان مثلا ما آهای تبریزی اینجا شاگردش اصطدای ما شاگرد آهای تبریزی بودن خود آهای تبریزی گم بود ولی کجا خونده بود شاگرد کی بود نجف بود دیگه یعنی بای... خب این هم میرن ببین سفرهای حدیثی همین بوده سفرهای حدیثی داشتن اینها می‌رفتن می‌اومدن بله الان خود صدوق یه جان نشسته که اینقدر اینور ور رفته تو همه جا هم کتابا رو عکس کرده مخصوصا اگر از جهت سیاسی و امنیتی خوب باشه مثل دوره آل بویه باشه خیلی فضا بازه خیلی خوب این هم از این آقا حدیث ببینیم چقدر با اون حدیث ما یکسانه خودشه حدیث خودشه پس الان برای ما از جهت منابع هم دو تا منبع به دست آمد ببینیم بعدیش دیگه چیه کافی كاف، بله این برهان کافی ها بذارید مقایسه کنم من فی قول الله عزوجل فی قوله تعالی این مقدار اختلافات دیگه طبیعیه فلینظر الانسان الى تعامهی قال قلت ما تعامه قال علم الذي يخذه ام من يخذه همین خودشه این مقدار اختلاف هم طبیعیه حالا سند این رو ببینیم امام باقر علیه السلام زید شهام اما ذکر راوی بعد از زید شهام دوباره کافی هم نداره ان ابي عن احمد ابی محمد ابن خالد عدت من اصحابنا میبینید همون سند دقیقاً سنده چشیه فقط این عدت من اصحابنا نداره اونجا فیروزان بود خیلی خوب حالا یه سوال از شما انصافه الان انصافا الان عین همون عبارت هست کلینی نقل کرده مفید در اختصاص نقل کرده تشخی نقل کرده مضمونش هم مضمونی است که معید به روایات دیگه است میتونیم بگیم این حدیث ضعیفه بذار کنار اینا رو انصافا چطور جرأت کنیم ما بذاریم کنار نمیشه این دیگه انت تو من اصحابنا باید ببینید چه انت تو من اصحابنا که از احمد بن خالد برقی نقل کردن چی ام اینو شده تو خلاصه علامه اینا رو ببینید اونجا ذکر کردن تو علومه حدیث ذکر کردن بله؟ هدایت الامم مال شیخ خوره این وسالشی هم که از همون کافی آورده مراد کافی اسلامیه همین مستدرک فل اختصاص مستدرک هم که از اختصاص آورده تنبیه الخوات دیگه از این بعد تمام شد پس ما مخوام سوالتون من. ما یه لحظه این رو ببینید از حس منبعیابی و تخریج این حدیث که کجا نقل شده من دوباره از این در مفصال اکسپایند استفاده کردم. چطور اینجوری میشه پس؟ خب حالا خواستیم بزرگترشون بدیم براتون. این رو ببینید. امام باغر حدیث ششم کشی، امام باغر راویش زید شهامه تو همه اینها زید شهام پس شما میتونید بگید آقا زید شهام روایتی از امام باقر داره که درش در مورد اون آیه انسان الانسان مطلب گفته یک سند ابن عبی عمر بود کدوم بود اختصاص شیخ مفید میبینید سند شیخ مفید اینجوری آوردن سند دومش از زید شهام معلوم نیست که ام من ذکره من سه تا نقطه گذاشتم ولی هر سه تاش که کافی محاسن و رجال کشتی هست میبینین؟ پس کلن در چهار تا کتاب اختصاص مفید کافی کلینی اینم محاسن برقی که ندیدید اونجا هست اینم خود رجال کشتی اینها همشون چهار تا منبع برای این حدیث هستن همشون هم منبع اصیل اما سه تاشون یعنی کافی محاسن و کشتی از طریق احمد بن محمد بن خالد نقل کردن که راوی از زید شه هام رو بره ما گفتن امن ذکره اما اختصاص مفید قشن سندش متصله سندش متصله و مشکلی نداره پس چهار تا منبع قدیمی این حدیث رو نقل کردن به نظر میرسه که این حدیث قابل اطمینان باشه قابل اعتماد باشه من نمیتونم این حدیث رو چنار بذارم بله؟ سندهش شو یعنی چی سنده شو سندهش همینه دیگه سندش اینه ولی نمیشه این رو چنار گذاشت. از آن من که کرد، همین دیگه کلینی. اتفاقاً یکی از قرائن ما چه که روایتی خوبه. اینه چه کلینی نقل کرده. چون نقل‌های کلینی همینجوری نبوده. خیلی خوب. آقا ما از جهت رجالی و اعتبار سنجو اینها بررسی کردیم. حالا آیا خواست رو ببینیم؟ حالا ساعت پنج شده این فقط یه بار دیگه مطمئن بخونم دیگه خودتون رو متنش کار بفرمایید ما هفته بعد انشاءالله بریم وارد حدیث بعدی بشیم حدیث ششم شش معتبر هست انشاءالله از امام باغر علیه السلام فی قوله تعالی فلین زلل انسان و الى تعامهی انسان باید به تعامه خود نگاه کند عزت میفرماید علم تو رو نگاه کن از هر چیزی علمت رو نگیر نمیتونی بری از ابو حنیف علم بگیری، نمیتونی از شافعی بگیری، نمیتونی از احمد حنبل بگیری، نمیتونی از ابن عباس حتا بگیری، نمیتونی از ابن زبیر بگیری، نمیتونی از ابو هریره بگیری، از هیچ کسی حق نداری. نمیتونی از یهود و بنی اسرائیل بگیری که عمرهای تشویر میکرد. نمی از هیچ کس بگیری. یک مسیر داره اونم اهل بیت و کسانی که از اهل بیت نغل میکنند. مطلب کاملا درسته. آره علم دینی دیگه آره دیگه و الله این منظورش مثلا علم نجاری و علم چیزهای دیگه نیست که اونو از ولا به سین برو بگیرش اشکال ندارم آقا انشالله موفق و معاییت باشید ها. یه سوالی ایشون داشتن اینو برای جلسه بعد روش فکر کنید که این آیه معنیش همینه من قبلا گفته بودم تو اون فضا اون قرینه رو در نظر بایی همه دارن منحرف میرم همه دارن طرف جهنم میرن حالا راوی میپرسه که فلیانزوله الانسان الا تعامهه یعنی چی؟ حضرت فرمایت نرو سراغ اونها این به نظر میرسه که نوعی تعویل هست به خاطر اون فضایی که بوده حالا روی این فکر کنیم سلامات ببشستید آیا دقیقا فرمایت داشتی؟ به بخشید همین نکته آر آره. جلسه بعد اگر شد باز صحبت میکنیم مشایخ کلینی مشایخ کلینی آدم حسابی ها. وقتی شه کلینی میگه ادتون من یه وقت نگید زعیفه محشوله. اون اتفاقا قوی تره آره بابا اساتید کلینی اینا آدمای حسابیان، حسابی حسابیان، لذا روایت خیلی محکم تر میشه آقا انشالله موفق و معییت باشید اسامی شریف رو هم من بزنم چه